با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان تلویزیون رنگین کما بخش نهم سخنانم رو درباره کسری شروع میکنم در بخش هشتم سخنان ما تا اینجا رسید که کسری در زنجان با ملایان در افتاد و یکی از کارهای مهمی که در اونجا بر علیه این آقایون انجام داد شکستن بست و پناهندگی خانه ملایان بود که می نویسه پس از این تاریخ دیگه این آقایون این کار رو این کار غیرقانونی رو انجام ندادن باز در مورد مبارزات دیگرش اینا که از رو نمیرن مشکل هم فقط مشکل پناهندگی نیست که بین اینا اینا قدرتشون رو میخوان اعتبارشون رو میخوان در جامعه بنابراین کسری باید با قدرت و با اعتبار اینا مبارزه میکرد مینویسه که در همان روزهای اول ورود زنجان ملایان یک بیادالتی رو در اونجا به صلاح انجام داده بودند یه ادالتی عبارت از این است که گویا یک فردی صاحب خانهای بود برادرش که با ملایان نزدیکی داشته میره به قول ماها پارتی بازی میکنه و این ملایان گروهی رو میفرستند در دادگاه خودشون در دادگاه شرعیشون نتیجه میگیرن که زمین اون خانه مال این یکی ها گروهی از این اوباش موله ها رو اینا هم اوباش داشتن در دور ورمش خودشون همیشه و اونها اون سربازه بودن آدم میکشتند توهین میکردند، مردم را از خانه هاشون بیرون اینا هم همه اوباش هم فکر نکنید که مثل چاهوکش های تهران نه همه هم طلبه بودن یا سید بودن یا قای سید گردنسون کلوف بودن قرد بودن تیمیتا خودرخمن بودن گروهی از این اون با اطرافیان خودشون میفرستن فرستن اون بدبخت مالک رو ببخشید از خانهش میارن بیرون این یکی که مدعی بود و ولی صاحب خانه نبود مالک نبود اونو میذارن سر کار میگه که این ملایی که یه چنین کار یه چنین خلافی رو انجام داده بود اسمش اسمش هم میگه حاج میزا ابو عبدالله بود رسلی دستور میده این ملا رو میارن بیرون این مالک جعلی رو میارن بیرون و مالک اصلیش رو میذارن سر کار میذارن در خانهش بشینه میگه یک روزی خودش اینجوری می نفسه. یک روز برادر آن ملا که با من آشنا بود پیغام فرستاد و مرا به خانهش دعوت کرد کسری اصل همان روز به خانه آن آشنا می رود و معلوم می شود که ملایان زنجان بر علیه کسری دسیسه چیدند خیلی دلشون از کسری چی داره. جسری از را رسیده این جوان سی ساله با اینا دراخت داده نمیتونن به بی نمی این سادگی که ولی نمی مسائل رو میگه مطلب اینجوری بود که گروهی طلبه و عباش را فرستاده بودن و به زور وارد خانه فوق کرده بودن و مالک اصیان را از خانه دوباره اخراج کرده بودن و اون مالک جعلی رو جای اون گذاشته بودن و خودسونم اونجا نشسته بودن که امنیت اون مالک جعلی رو اونجا با گردن کلفتشون اداره کنن رعایت کنن و قرار کنن میگه پادر این آقا گفتش که شما برادر منو میشناسید گفتم بله مشتهد عالی میگه سندشونشون داد گفت این آقا مشتهد شده بنابراین فتواش فتوای شرعیه به فتوای این برادر این عمل انجام شده. کسری فردا اول وقت در اقلیه به مدعیه عموم و دادستان منصور دستور می‌دهد که شما به شهربانی و حاکم بنویسید که خانه را باز گردانند یعنی دوباره مالک اصلی رو بگذارن اونجا. و اگر آنها کاری نکردند با خودمون توانیم کاری کرد. به دنبال این نامه جوابی از حاکم آمد بدین شهر ببینید قدرت ملایه و بدبختی و حقارت این حاکما البته این حکام وقتی با مردم عادی دیر میشد خنجر نیر قصبش سر میبرید ولی در مقابل ملایان همیشه زبون بود میگه به دنبال این نامه جوابی از حاکم آمد بدین شهر چون حکم علمای اعلم کسر الله و بوده است، اقدامی اختزا ندارد کسر این مالک از را که اینک اخراج شده بود می و به او دستور می دهد شما بروید در صلحیه عرض حال تصرف ادوانی دهید میگه برگشت گفت آقا سه ماه طول می کشد ما اکنون در کوچه مانده ایم شب کجا بخوابیم میگه گفتم ما فردا ظهر نشده خانه را به دست شما خواهیم داد کارهایی میکرد که مولده ها هرگز و خواب از دور صفحه یه تا روز تو خواب نمیدیدن این مسئله میگه آنگاه امین صلح را خواستم و به او دستور دادم عرض حال این آقا را شفاهی بپذیر و بیدرنگ قرار تحقیق محلی صادف کن فردا پیش از کارهای دیگر به محل رفته تحقیق کن و باید چنان باشد که حکم اخراج اخراج اون کسی که رفته اونجا نشسته به دستور مولداریان یک ساعت پیش از ظهر به اداره اجرا برسد و من آگاه باشم امین سول دستور را شنید سخنان کسویس ادامه شد و رفت و فردا در همان ساعت موقود حکم به اجرا رسید کسری بلافاصله تن از معمول آزم آن خانه می و به آنان دستور میدهد که با لگد و سیلی و را از خانه پراکنده سازید می آنها رفتند و چون کار به مشت و لگد و سیلی رسیده بود طلبه ها و سیدها ها نیستاده و گریخته بودند و خانه تویی گردیده بود و کسری مالکستیش رو میفرسته پیش خانه بنابراین در این هم کسری موفق میشه خب دلم میخواد ببینید که این آقایون ها در جواب این مسئله میخوان قدرتشون واقعی بمونه چه اکس و لمل اینشان میدم میگه مله چون چون این دیدن به خاطر به میدان کشیدن مردم به سعب و زمان ملتجا شدم <تصفيق> بدین شرکه مایی را سوار ااصل گردانند و او در سبز میدان و بازارها میگردد و فریاد میزند یا صاحب و زمان دین از دست رفت. تمام کسانی که مثل بنده در ایران زندگی می این شگ و این نوع رفتار این ملایان را به خوبی در خاطر دارند این چیزی جدیدی نیست متاسفانه هممون اینا رو دیدیم. نیکن مردم اعتناعی نکرده و تیر ملایان به سنگ خورده بود باز ادامه می داد. فردا در اتاق عدیه نشسته بودم دست نمی که فردا در اتاق عدیه نشسته بودم دیدم هفت یا هشتن با دستارهای سیاه و سفید و با گردنهای سپر، ستر از درد در آمدن. و سلام دادند و نشستن و یکی از ایشان که سیدی سرخ می بود به سخن پرداخته گفت ما را حضرات علماء اعلم فرستادم به شما سلام برسانیم ما را حضرات علماء اعلم فرستادم به شما سلام برسانیم فرمودن که عرض کنیم که برادران قلام حسین خان و جمعی دیگر که به اتهام قتل حالا دیگه عوض شوژن عوض کردن رفتن در پرشرهی مطالب دیگه این دیگه رو گذشت و صاحب ملکش شد. فرمودند که برادران غلامسین خان و جمع دیگر که به اتهام قتل و یا اتهامات دیگر محبوس هستند چون اتهام آنها به ثبوت شرعی نرسیده نرسیده حضرات علما خواهش کردند که همش آن را مستخلص فرمایید و اگر مستخلص نفر حضرات علما از فردا به تکلیف شرعی خودشون عمل خواهند کرد حالا ما که کس رو خوب میشناسیم در این نه جلسه نه که با، از خانم با کیفیت فکری و روحی و عکس آشنا شدیم جوابش چی بوده می نقیسد به آن اوباش جواب دادم به آقایان سلام برسانید و از قول من بگویید این کسان دوسیه هایشان به دیوان جنایی رفته که در تهران است و ما در اینجا اختیاری دربارهٔ آنان نداریم اما اینکه گفتند از فردا به تکلیف شرعی عمل خواهند کرد مگر آقایان از فردا به حد بلوغ خواهند رسید آقایان از روزی که بالغ شدند بایستی مت تکلیف شرعی خود عمل کنند دیگر در این باره ایشان را هیچ تکلیفی نیست این بود جواب کسادی خب ما هم بر درس کردم که کسادی همیشه سر رفتار تا وقتی به یک جایی میره خاطراتش شده میشه خاطرات اجتماعی شون مطالعات سیاسی رو انجام میده نبخشت <تصفيق> در سنجام بود کسیدی که به ادامه نوشتن تاریخش در ساله آزربایجان پرداخت که این کتاب رو از دماغن شروع کرده بود به زبان عربی می نویسه قطع, قطع و می فرسته در سیدا منتشر میشه و بعد همین است که پایه کتاب پربار تاریخ 18 ساله آزربایجان را تشکیل داد همچنین در مازندران هم در مورد واژه‌های ترکی در زبان فارسی کارش شروع کرده بود به زبان عربی بود اللغت الترکیه ایران و باز این اجوهش رو تکمیل کرد و برای انتشارش به الارفان فرستاد در سوریه در همان یک سال کسب یک سال در عدیه بود اول دی ماه 1301 به, به زنجان آمد و اول دی ماه 1302 از زنجان برگشت خواهیم دید در ویانات اضافی ما در همان یک سال گستوی در زنجان درباره باره جنبش بابیگری نیز پژوهش کرد زنجان در عبایل سلطنت ناسدنیشان مرکز جنبش های بابیگری بود در ایران دیگه در آن شهر ملایی میزیسته و این معروفه در تاریخ هممو هم خوندیم در آن شهر ملایی میزیسته. از تبار اسفهان به نام مولا محمد علی خیلی بد کشتن این مردم چون شهرت داشت او بابی نبوده و بیگناه به وسیله حاکم زنجان کشته شده است کسلی در مورد وی به مطالعه می پردازه. و در این باره می نویسد که پدر میزا محمد علی پزشکی از مردم اسفهان نبوده. به نام میزا به زنجان آمده و در آنجا با نیکوکاری میزیسته. گذشته از پزشکی به کار مردم میخورده در زنجان گرمابهی، آبنباری و چند خانهی ساخته که هنوز به نام او خوانده میشود. در رو تاریخ کسری بوده 1301. به سرش سید محمد علی نیز مرد بی آزار و نیکوکاری میبوده ولی چون به ملایان میپروایی میکرده به هر کجا میرسیم برمیگردیم به اینکه که اینا آدم کشند ولی چون به ملایان بی پرواهی می نموده با بیش و در سال ۱۸۸ را به روح قمری با فشار ملایان و به دستور حاکم سرش را می برند خواه در آخر تابستان سال ۱۳۰۰ برای استفاده از است تعطیلات تابستانی خودش به تهران میره و در اونجا بوده که از سوی وزارت عدلیه دوباره مأموریت بش میدن که در عین حال که مسئولیت ریاست عدلیه زنجان رو داره در زنجان و در قزوین گفتیم در یکی از بخشها که امتحان میگرفتن از گذات تا هر کسی از این امتحان قبول میشد خاصش میکردن مسئولیت امتحان مخته کسبی می و او کسبی بلافاصله فاصله به منطقه اول میره ره به زنجان و بعد میره اول میره به قزوین بعد میره به زنجان و ترتیب امتحانات رو برقرار کنید یکی از کارهایی که در اونجا باز انجام می آن بررسی امام هاست که چه امام های غلابی رو در کشت من دو تا یا سه تاش من از اینجا حضورتون عرض خواهم کرد می نویسه که غزنین شهریست است ویران ولی مسجد و گنبد های فراوان دارد روزی گنبدی را گنبدی دراز دیدم پرسیدم گفتن قبر حمد الله این حمد الله مستوفی که <تصفيق> در سال هپاه رجهه قمری وفات کرده مورخ و جغرافیدان معروفی بود که ت... کتاب تاریخ گزیده را نوشته که هنوز معروفه میگه پرسیدم گفتند قبر حمدالله موستوفی است درونش رفتم دیدم صندوقی چوبی است و ای از یک سویان آویزان میباشد در شگه شدم که همدالله مصدوفی نیست امامزاده شده است. خب توجه به فرماید یه بدبخت یک گانشمندی می میره یه قبر رو براش درست میکنن کنند بعد مردم این مردم بدبخت لابودیه ملایمون جا بوده که به چنین دستوری داده یا نداده این مردم ناغاه بیچار میرن. می رن می بینن که قبر معتبره و کتابی هم اونجا کتاب دعایم اونجا می کنم تصوره که امام است یک بار دیگه میگه که روزی دیگر جایی را دیدم گفتن پیغمبری است. چهار پیغمبر در اینجا به رفتند رفتن به نام های سلام، سلوم، سهول و القیام حالا شما بنده مراجعه کردم به فرهنگ ها ببینم این به جز سلام این سلام و رو و چیه؟ چه چجوری سر مردم اینا کلوها میذاشتن چجوری از درست میکردن در اونجا پیغمبریه درست میکردن و این مردم بدبخت رو میکشوندن اونجا و پول میگرفتن ازشون یک روز دیگر میگه در یکی از سیاحت ها در چند فرسخی غزوین <تصفح> به امامزاده دیگری برخوردم می نویستد. من سنگ گورش را خاندم یکی از سیگت زنجان بود که در بادجایی غازانخان سرز می بوده یعنی نخست وزیرش می بوده ببخشید و با دستور غازانخان کشته شده و در کتاب ها و تاریخ ها هست همه میتونند بخونن گفتی کردیم که آقا اینجا هم امامزاده شد یه آدم فاسدیه پادشاه میکشه و بعد اونجا قبلش درست میکنن بعد مردم میرن اونجا میگن که اینجا امامزاده است میگه شگفتر این بود که شب که به غزمی بازگشته بودم کسانی به دیدن من آمده بودند من چون این مطلب را گفتم آنان نپذیفتن و گفتم مسلمان امامزاده است و هرکسی که به اون توسط کنند مسلمن حاجت... حاجتش برآورد می شود خب یه از ها من ستاش رو بررسی کردم حال دیمتم بیشتر هست یا نیست تجریح دادم که اینا اشاره بکنم و در این مدتی که در قضرین بوده در باره قررتال این مطالعه کرد و رفت بود خانه که قررتال این در آنجا زندگی میکرد خانه پدریشو رفت با یکی از فامیل های آنان نه باده های آنان رفته بود خانه به پدریشو دیده بود در اون باره و در مورد یکی از دوستانش که مهمان آمده بودن تقلبی در نوشته هایش که از تصوی گرفته بود انجام داده بود که بنده چون نویسنده یه است در اینجا اشاره نمی کنم بر این که حرمت و حدیق حیثیت جزبه برنامه بنده نیست ولی به یک مطلبی اشاره می کنم که ما تا این تاریخ نه بخش همش از کسزوی تایید کردیم جز یک جایی دو جا. من در اینجا جا میخوام از کسزوی نقد بکنم افسوس میخورم این مرد بزرگوار یه چنین کار خلاف بزرگی رو انجام داده و ما باید هم خوباشو بگیم هم بداشو بگیم وقتی شما تاریخ میگویید باید حق را گفت یک طرفه نباشد و در ایجا به یکی از اون زشت کسلی اشاره خواهم کرد و خوشبختانه این مطلب رو خودش در خاطراتش نمیشته بنده در روایات دیگه شنیده بودم خوانده بودم که می نویسن گروهی درست کرده برای زتن مخالفانش کتک زدن، زدن زدن جسمی هیچ وقت باورم نشده بود و تا حالم جایی ننوشتم اینا رو بلی که تس که آدم یکنی کاری بکنه ولی اینجا در خاطرات خودش می نمشته. در میگه در همین مسافرتی که کسری برای امتحان غذابت به دادگستری به زنجان رفته بود اونجا یه عموم بود که از اول با اون اختلاف داشتن دوتایی میگه این مدهل عموم آن شهر با مدهل عموم آن شهر این رفتار زشت رو انجام کرد داده و اظهار فشیمانی مزید کارش نکرد از این مرد میگه همزمان با ریاست عدیه کسری در زنجان با مدهل عموم اختلافاتی داشتیم ها چند کسری مدهل عموم رو مدت هم به کارهای زشتی بکنید کارهای زشت میگه گمارباز و درستین حتی خوب این موکنه به دوردی مسئله تا اون حد زشت نیست که مشکل آفرین باشه میگه روزی در دادگاه که محاکمه می میبود و مدعی عموم میبایستی سر وقت بیاید بسیار دیرآمد من از او پرسیدم چرا دیر آمدی؟ او جواب داد من مگر تابع شما هستم راست میگه دادستان تابع رئیس دادگاه نیست گسشوی میگوید تابع محکمه که هستید و ادامه میدهد خاص پاسخ بدهد من برخاستم و به گلویش چسبیدم و مشتی به سرش زده از پنجره پایینش انداخته گفتم برو که دیگه مدهیل عموم خائن مثل تو را نمیخواهد خواهد متاسفم من از این مطلب رو در کسرگی دیدم حیف ولی خب اشکال بزرگی داشت یک رئیس عدلی مشتش را مثل اوباش نشان بدهد به مخالفش میشه اوباش. اون دیگه ریش دیگه نیست برحال این یکی از مسائل قبیهی بود که کسری با آن دست بود و داستان است که بالاخره این بدبخت دادستان رو هم مجبور می کنن دور که فوزش خواهیم هم کتک میخوره میره پناه میبره به حاکم زنجان و بعد خود آقای کسر که توجه میدن میره این آقا رو برمیگرده میاره و مشکل حل میشه ولی همین که این آقای کسری رئیس عدیه مشکش رو حواده یکی بکنه تمام اعتبارش میشه ما یاد ولی با این همه بگمان من باید گذاشتر ترازو نیکی ها و بدی ها هیچ انسانی معصوم نیست معصوم وجود نداره ولی خب این قضاوت ترازوست که انسان ها را ماین می کنه. شخصیت شما رو درست گاه شد و بنده در آقایزن بود در اینجا در بخش نهم به پایان می روزتون بخیرم